بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى وصحبه اجمعين اما بعد اخر المبحث هل المصطلح الحديث اخر المبحث بحث الحديث المقلوب كي في يوم بحث المصطلحها بدات قلنا مسائل عامه بنحاول نرتب ان المصطلح دارين رواه فهم مسائل ضمن الجرح والتعديل علم جاه و تعدل و بعض الرجال و علم تخرج و مسائل إن شاء الله خواهين كتاب كتاب النقذية امام الزهبي بس دقوم المخلاب المقلوب حدیث مقلوب اون چیزی که یک شیخی را باید میکنه حدیثی را با اسنادی دیگر یعنی به فرض اثناد امام بقایی از طریق مثلا رسیل از مالک، از نافع، از دراب نامر از از ما، از رسول الله صلی اللہ علیه و سلیم بیاد مثلا همین اثناد را بذارد و حدیث را بگرده فينقلب عليه وينط من إسناد حديث الى مثل آخر بعده ينط يعني بفرر فرش بكنا بعد ذلك بفر يكون هنا بفرر ويمثل ديال إسناده بجيء بعد ذلك قاتي بكنا ببرر ويمثل ديال إضافه بكنا بيين إسناد كذلك يمكن اسم يترويث در اسناد اومده او ينسب عليه اسم راو مثل مر ابن كعب وكعب ابن مر وسعد بن سنان وسنان بن سعد اسم راو به این صورت که تغير تساء مثلا مر ابن كعب يکعب ابن مر این قلب در اسناد در است که در اسناد واقع میشه حالا بگو کنید به طور خلاصه بحث قلب بدون قلب داریم قلب در اسناد اول که همین آخری بود در اصناد اسمی اکراوی یسو پدر و پسر با هم عبت میشه نور دوبومش حدیثیست مثلا بالفرز معروف با یک اصناد و راوی بیاد همین حدیث را خاطی بکنه و مثل دیگری رو روش بذاره اصنادی مثلا بالفرز داره همین مسالی که من دادم که همین مراوه شیخ بسناد لن یکم کدره اه... که این کار رو بر سر امام بخاری در آوردن صد تا حدیث رو آوردن اما هرشن که بعضی اتفاق کردن از این روایت صد تا رو به دست آوردن متن حدیثی را رو آوردن روی اسنادی دیگر و اسنادی روی متن دیگر همینجوری با هم عوضش کردن بعد از صد تا حدیث که تموجو هر نفری 10 تا حدیث نقد بعد از اون امام بخاری اومد متن هر کدوم را به اسناد اون حدیث بعدی برش گردوند Аз истеъҳъини هست инҷо Имоми Микаси иззат мекунад, мегӯяд ки мегӯяд ки Имоми аз ибн Абдулҳади рӯзи умад дар назди Имоми Қози ва гуфт ки имтиҳон аш мекунад. Чанто ҳадисро интихоб кард, чанд ҳадисро интихоб کرد аз аҳәдиси худ Имоми Миси. Умад исноди ал-фал нақз تا یک دفعه امام ابو بکر سید می گفت ما در اون جلسه که نشاست بری یک دفعه خری نشست امام مزی گفت که اون بخاری بود من مزی اون بخاری بود این قبل از اینکه مثلا به فرز امتحان بشه و احادیث رو ذکر بکنه چل تو نشست نشاست گفت گفت که اون بخاری بود من مزی ام اون بخاری بود که اومده بود و احادیث را به متونش برگردوند اون اسالی رو به متونش برگردوند ولی من اون کتی که شما فکر میکنید با اون حافظه نیستم هرچن که امام مزی از لحاظ حافظه و از لحاظ درایتش نیست خطبه سنکن این کمتر از امام بخاری نیست امام زهبی امام مزی امام حجر ابن کسیر جز اعلام مشکور علم حدیثا و جز راسخین در بحث حدیث و حفظ آسانی و متون. در از اون در متنه کلمه <میدرمج> با درمت با کلمه دیگر عوضش بکنه. مثلا حدیثی که در صحیح مسلمه. وراجمت صدقه بصدقه این اخفارها. حتی لا تعلم یمینو ما انفقه شماله. حتی لا تعلم یمینو در عشق فکرد حتی لا تعلمه شماله. دست راست نداند که چپ شداده. این قلب شده. باید چنین بود. همونطور که در روایت مشهور اومده. چپ ندونه که راست چی داده. بین راست و چپ در شده. و از جور نوع دوم بازم قلب درمت اضافه میشه و گفته میشه که یعنی جز نوع دوم قلب درمت هست اثنادی را مثلا به فرض همچنان اینجا میاد خود امام زهبی ذکر میکنه اثنادی را یک راوی بیاد بدوزه و روی متنی از طرف خودش بذاره مثلا به فرض فمن تعلل ذلك خطا انت قريب الله كتك الله قلب انجام بده این شخص کی یک بار بزنه یکی این شخص ضعفش ییتیرا فقریب من درش که ضعفش کمه و من فمن تعمد ذلك و ركب مثلا على اناد ليس له فهو سارق الحديث كفتا عن ذنک نیکاری بکنه مثلی رو اسناد دیگر بذاره اس فیها سک حدیث راضوزه معروف به ثارق الحدیث کسی که حدیث را دزیده مثلا به فرض یک حدیث یک متن را میاره بعد اسنادی از خودش در میاره اسنادی از خودش میگه مثلا به بفرض اسنادی که نیست همینجوری از خودش اخترام میکنه حدثنی فلان عن فلان عن فلان عن فلان تا اینکه میرسه به اون راوی حالا در ضمن همین قصه هست بس یه خب ما در بحث موضوع ذکرش کردم یا روزی احیاء ابن معین و احمد ابن محمد در دلسی نشسته بودن یکی از وضعین و قصاص داشت نقل میکرد اومد گفت احمد ابن محمد و احیاء ابن معین به من گفتن تا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم که فرموده یک دو سه چار هر دو نفرشون در بغدار نشستن در اون حلقه ای خب همهشون اون شخص میاد احادیث را ذکر میکنه ده هم تا بیسان اینجا قد حدیث بود که ذکر کرده بعد از دوسته یحیابن معین بلند میشه مچ اون شخص دروگو رو میگیره میگه این احادیث را شما از کی شنیدی؟ گفت که من از احمد بن حنبل و یحیابن معین گفت که من یحیابن معین و اینم احمد بن حنبل ما به نگفتیم گفت که شما دوتا آن میگه با مسخر بلند شد و گفت ک چه کردی تو دنیا غیر از احمد حملی که تو هستی و ینگگی نه شما هستی و احن حملبلکی است؟ فکر کردی که کسی دیگر نیست من دهها احمد و محمبل و دهها اح روین میدادند. دهها اه محبل و ده رائ میشند دیگه سرش پایین انداخت و با مسخر هم مجلسه بیرروفت. آیا اینا معوط هم به دزدان خرید میان مثل حیث را با یک منی میدوند یک حیث را با م میان اسنا جیب خودشون در بیان و؟ دون حدیث ثالثی мекунам میچسبнам ва хуа аллази یقالو фи хаққиҳи хулан нисриқу ал-ҳадис индас нис за хаққи кин ашқоси ки аснадро аз зиб худишон дар мияроби мат мизоранд башон мегуян киси ки дузза дузза ҳадис дузза ҳадис киси ки аснад аз худиш ба ويدعي ويدعي سماعه من ربه وإن صرف أحده بأثنان ضعيف لماذا لم يثبت لم يثبه سنده فهو أبعض جورما لمن صرف حديثاً لا يستحى المذنون وركب له أسمائه صحيحاً فإن هذا نوع من البعض الإفتراء فإن كان الزرق في المسل الحلال والحرام فهو أعظم فقد تنوى بيتا في جهنم وأما سرقت السماع وأما سرقت السماع والدعاء ما لم يسمع من الكتب من الكتب والعزاء فهذا كذب مجاول ليس من الكذب على بسوء صلى الله عليه وسلم بل من الكذب كذب على الشروط ولا يفتح من دعاناه وقال ومنهم عندما تفترضوا بعد وفاده ونصد الله استدراه العالم بلا أجل لديك درزان حديثي ومن ذلك يسرق ما سمعه فيدأ سماعه من رجول يك حديث راك الشنيده ومن ذلك يسرق حديثا ما سمعه يك حديث راك الشنيده بيوت هم ادعا وکنه که از فلان میشنیده در اصل از کس دیگه شنیده بیاد بگه من فلانی من از یحیی بن ماینم برداشت شنیدم و ان شاء الله لم تن لم تثبت سند فهو اخف جرما اگر حدیث رو زعیف زیک بکونه و بل افس متنی که ثابت نیست این جور مشکمتر یعنی یک اسناد بیت متن ضعيفي اسناد ایده روش ترکیب بکنه متن ضعيفي به اصل زعیف روش ترکیب بکنه این جور مشکمتر از کتی که حدیثی که ثابت نیست اسناد صحیح روش ترکیب بکنه بزاد و رکتبه له اسناد صحیحه که بیاد اسناد صحیح رو متن زعیف بذاره این جز کسانی هست که دروغ بر رسول الله اللہ علیه وسلم بسته ها در نوعی و نوع الواقعی و الافتراح. این یک نوعی از دروغ و افتراح هست که امکان ذلکه في متون الحرار والحرام الحرام فهو اعظم اثمه و اگر این دروغی در متونی که حرار حرام در اشت باشه جرمش شنیعته رو بدتر هست و این شخص خانه را در جهنم روی خودش ساخته با اون دروغشت و اما سرقه السماع و دعاه ما لم يسمع من الكتب الاجزاء فهذا كتب مجرد کتیبه مثلا کتب را نشیده صاحب بخاری مثلا نشیده یعنی با سند تو سند متصل مثلا نشیده بیاد بهت من چیدی ده این میگه دروغ مجرده دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و دروغ بر شیوخه با اون شیوخی که ازشون نشیده و کتیبه این چ این کار بکنه هیچ وقت و سیگار نمیشه هیچ و خوش وقتم نمیشه هیچ وقت موفق نمیشه در دعوتش نه در اون نقل خیصشون. خیلی هم کم و آندکن از کسانی که این چ این کار رو بکنن اد جایعای شریدن کتابه را بکنند و برخدا ازستشون بکنه. بعد از اینها در زندگیشون رسواه میشن و از بعد از اینها بعد از رففااتشون خداومد ما رو و آنها راست بکن. این سطام بحث مقلوب انا مسائل عام كذنه فصول المسائل امام ذهبي در اين كتاب ذكر ميكنه فاس لا تطق <تصفيق> ۶۰ محمودا عقل مسجده ولا ذلیل فیل فل معتبه رفیل هو عهل اهلیت فحث و بله بحث شنیدن یک راوی بیاد از شیخ بشنگید ما الفاظ ادا رو قبلن گفتیم حدث انا و اقبران او انا و این الفاظ قبل از از از اده الان بحنا بحنا بحنا ایک شخ شخ ایخ شخ ای چه وقت میتونه بازگو بکنه اون تحملش، اون صبرش اضافه به حدیث از چه آغاز میشه و چطور آغاز میشه آیا مشری میتونه در فاصله چند کشید را بشنه بشنوه بعد در اسلامش حدیثو نقل بکنه آیا یک صفر ليك بچی سه سال دو سال سه سال چهار سال پنج ساله قبل اینکه بالغ بشه میدونه یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم بشنه و سلم بشنوه بعد اینکه بزرگ شد اون بازگو بکنه در بازگو کردن شرطه اون شخص شرط بالغ و باشه در و مسلمان هم باشه شرط یک کس نمی تونه حدیث را نقل بکنه، بازگو بکنه. لکن الله بحث اینجا میگه ذات صفات العداله در حالت عدالت حالت تحمل عداله در حالت تحمل شرط نیست. وقتی گفتیم عدالت شرط نیست یعنی اگر مشرک باشه مشکلی نیست. اگر کافر باشه مشکلی نیست. اگر زن هم باشه مشکلی نیست. اگر بچه هم باشه مشکلی نیست لیکن الان بحث بچه بودنش از چه سن نیازاز بیشه در اشترافه لخواه دیمه بلکه اشتراف عدالت در حال ادا هست وقتی که میخواد حدیث را نقوم بکنه اونجا هست که عدالت شرکه فیسش سماعه کافران و فاجران وصابیه فیس سماعه چیست صحیح هست درسته کافرش فاجرش و بچهش از جمله ادله برین مسئله یک اجماع که ابن سمیه نفت میکنه اجماع سلف بر این که اخبار همچون عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر و نعمان ابن بشیر و دیگر که جز اصفال میدن آن در بحث بچگان در بحث اصفال اجماع برش که احادیس اینها صحیحه آن خیلی از علما اجماع نه کرده کران جای باز می کرده نشیستی آزمیست بعدا بحث مشرقي كي حديث را در خالص شرك شنيدهږي فقدا واجبيرو نو مسند و ده و سمع النبي صلى الله عليه كما شيده امر ده خالص شرك شيده كه رسول الله صلى الله عليه ذلك حال شرك وروهم مؤمن هذا ده خالص شرك ان سوره روشني و ان حديث الله اي حديث مشاهده میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد بعد اینکه مهم میشه و ایمان داره به الله صلی الله علیه و سلم این حدیث رو نقل میکنه بله برای داشت خبره بله مشاهده بعد دومی هم بحث بچه و صلاح بحث علاقات بچگی همون ابن عباس و Anas رضی الله عنهما از زبای بن عمر و مشایخ دیگه از صحابه که بچه‌ای بودن در دوران حیات بعد از حیات ایشان وصلح المحدثون على جعلیم سماع ابن سمسسیدین سماع و مدونه و حضورا محدثه چنینه میگه بعض المحدثه انا قوله ایک از اقباره بچه ای ساله اگر بخد حدیث را نقبه کنه باون حدیثی که تحملش کرده و شنیده در پنی ساله بی بش بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه بگه پایین تر از پنی ساله باشه، چهار سالش باشه، سه سالش باشه، دیگه نمیتونه ادعا, ادعا بکنه که من شنیدم اینش افقاق حاضر، حاضر بوده در جلسه، میتونه بگه من حاضر بودم در اون جلسه نمیتونه بگه که من شنیدم، ولی که این قول نه اجماع برش هست، نه دلیلی برش هست این از جمله مسائلی که علماء درش اختلاف کردن و عدله عامی هست که بشه سدازال کردن این بحث تا این سالگی را استنادس می کنم با قول محمود محمود ابن ربیع کمیات وقتی که مریض شده بود میگه از رسول الله صلی الله علیه و علیه میگه عقلتم للنبي في وجهي میگه از رسول الله صلی یاد دارم عقلتون دارم که آب دهنی را روی صورتم دید را بدهنش را روی صورتم مجهم و آب دهنه میگه بن محمودن عقل مجه یه علماء حدیث و سه ناس دارن و فضی روکتن که محمود بیاد داره اون آب دهنی که رسولات الله علیه وسلم برای شفایابی محمود روی صورتش گیفته ولی دلیل افیق هفچنکه میگه که این دلیل هم درش نیست یعنی بحث داریم که ما تحلیل بکنیم که کمتر از پنی سال یک شخص نمیتونه درک بکنه دلیل برش نیست. محمود، محمود ابن رویع میگهد که من درک دارم. آیا درک محمود دلیل بر اینی که در چار سالش بود نمیتونست درک بکنه؟ دلیل برش نیست. هر به نسبت اشخاص متفاوته، هرکسی درکش متفاوته، یک شخص 6 سالگی از درک کنه 64 ساله، یه شخص 5 ساله، یک شخص 6 ساله، یک واقعی رو میتونه درک بکنه و بعد بازگو بکنه از اون واقعی که دیده باشه، میده. و المعتبر فيه انما هو اهلیت الفهم اون و که اعتبار اتباع ردای تحمل شناخته و فهم مو این بحث محمد در تحمل حدیث، اون در دستش داشته باشه. بله، در مسئله وتادى بعض ايات ذلك في اطار رواه بذلك ايات ذلك تماما فبقرائات من السنه لا ادعو فواظار على النار ولا يسوق اذا ذرا وقوا وقوا وقوا بعضا ذهب الى الجوزاء ما رمتها في تدويزه ما وقالوا ما لا رى التسهيل وهذا ترقي ضعف أم اما اذا نقد من الجوز يا لا تذكي فذاك غيرا وان نؤكد بذلك التغيير التدخلي قلتوا قلتوا وراء يا التغيير الداخلي باذن الله تعالى او حين لو جمعنا فخذنا متفقا بالاتحاد اوقات و اوقات فريق النبي صلى الله عليه وسلم بما جزء مسائل كتابة حديثه قش بحث یعنی فکر نکنید که قدیم ها روش بحث نداشتنان ما روش بحثی که الان داریم در دانشگاه ها روش بحثی هست که غربی ها به مون دادن دیده کردن. این روش بحث مسلمان ها خیلی وقتی که دارن. میری که دستکاری کردن جز امانت از کتابی است. درست است که کتابی که شما دارید ازش نقع می یا کتابی دارید ازش نسخه بر می دارید کتابی دیگری مثلا کپی می چاپش درست که در اون تغییر ایجاد بکنید. درست نیست، خلاق امانداریه لیکن اگر اصنادی که اون, ح... اون کتاب بهت رسیده مثلا این کتاب صحیح بخاری اصناد دار... بین... بین شما و بین ما بخاری مثلا بیستنه شما از شخص ترجمه یا معرفی اون شخص را مثلا داشته باشید دالا با القابش و با تاریخ رفایاتش شما میتونید وقتی که نسخه برمیداری از اون کتاب است، در اون اثناد در پرانتس بذارید مثلا به فرز محمد ابن اسماعیل البخاری در, در یک مربع بذارید یک کروشه باز بکنید به نیسید مثلا. مثلاً متوفای سال مثلاً 256 هجری کمری این کار رو میتونید بکنید در اون اثنادی که جز کتابیست اون اسنادی که راویان اون کتاب به اون کتاب اضافه کردن نه صاحب کتاب صاحب کتاب نیمد اضافه بکنه صاحب کتاب از خودش تا رسول الله صلی اللہ علیه ولی که ما تا صاحب کتاب حق داریم که چی تصرف در اقناب بکنیم این چیزی که الان امام زهبی بهش اشاره میکنه هرچه که بعدی ها كرامته ستدسان وكذا بعضهم يزيد في الارقام والله في ذلك وان يزيد طريقه سماعه بالقراءه ما سمعه قدر الزائد على العنه هذاك بعض الامثله هذا ليس ان زياده اگر كتاب چند جزد هست جلد اول و جلد دوم يو كتاب اول و كتاب دوم درست نيست که تغییری در آسانی دومتنش ایجاد میکنی. کتاب همونطوری که شیدیدی یا کتاب همونطوری که به دستت رسیده باز همونطوری کوپی ازش بر بداری و همون نصفه برداری دقیق باشه و هیچیز تصرف درش نکنی. میگه شیخ مون ابن وحب چینین دیگه؟ در این مسئله باید یک نظر دقیقی دوباره بشه که آیا واجبه یا اینکه که بهتره یعنی واجبه دستکاری نشه اگر ما دستکاری گناهکار میشیم؟ یا این که مستحسنه چرا منابکار میشه؟ که دروغ بر صاحب کتاب میشه اگر شما مثلا کتابی اووردی دستکاری کردی تو اسنادش دستکاری کردی تو مدنش خب کسی که میاد بخونه فکر میکنه که چی صاحب کتابی جنی این حرفی رو گفته دستایتی که نگفته در نفسشون از شما چی میشه؟ دروغی از شما میشه بر صاحب کتاب بخاطر همینی که حالا واجبی که دست بعضی گفتن که واجبه هرچند که روایت به معنی را جایز و گفتن که ما لها یغیرت تصنیف و درست نیست که تصنیف عوض بکنم این درست میگه زعیفه خودمان زهبی میگه هرچند گفتم اختلافش حریدی هست در این مسئله بین ابن سلاح ابن دقیق قریس علامه عراقی و خیلی از جمهور عیمه بر این که تصرف در کتاب به هیچ نحنی درستی است. تصرف در کتاب در کتاب به هیچ نحنی درستی است. مگر اینکه استثناء. مگر اینکه ما در مقدمه یک کتاب اشاره بکنیم که ما تعبیقاتی بر این کتاب داریم اضافاتی داریم که در کروشه مثلا اضافهش شمی کنیم. یک جایی تصرف کردیم می توانیم که بود در دو تا مثلا خط فاصله یا در مرادبعی مثلا بذاریم اون اضافهی که مثلا ما داریم در. اون حدیث. مثلا, ما در خیلی در در مثلا در خیلی که ها میبینی مثلا در در روایت مثلا بختی که روایت حتی که میتونه از روایت روایت بخاری مثلا عن انس انا, انا النبي صلى الله عليه وسلم قال خب بیا چیکار میکنن بی چون ادله ان که روش شده حالا اون شخص داره در اینو هست یه بار در کتاب صحیح بخاری رضی الله عنه عن بی خط فاصله میذارن می نوشتن رضی الله عن خط فاصله قال الله قال النبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم این یکی اضافه از مؤلف جاهای به این صورت و جاهای به این صورت به هر صورت میشه مقیدش کرد شما سند رو دارید و ما هم داریم بله ما چه سند باشه چه معذ باشه ولی گفتم این مقیده که ما در مقدمه کتاب اشاره بکنیم توضیح حاطران مثلا ما در قطع فاصله یا در مربع میداریم. حالا بحث ادراج. اونجا بحث ادراج. که این یعنی مثلا منظور از این مثلا چنینه؟ نا خب این جز آلا اضافاته جز ادراج هست در اقناد در را جز همین مسئله هم هست جز اضافه هست در اضافه در تقنیم که آلا مشخص بشه این یعنی را که گفته صاحب کتاب نگفته شاید این حقیق کتاب بوده که با این یعنی مشخص کرده که این مثلا این هست خلاب می روشوند نه اگر, اگر از خود کتاب در پرانتزه می گذارن مگر اینکه در یاد مربع نمیزارم. مگر اینکه مثلا بالفرز اولا معمولا چی نینه؟ هر داخل اضافه مثلا مثلا بالفرز یک کتار مقصد تحقیق میکنن دوتا نصده داره. مثلا سنانم دو دوتا دا نصده داره. یک گفتاری هست در مرد یا در اتنار که در نصخه دیگر نیمده. میاد در مربعش میدارم از نصخه نصخه اصلش نصخه علفه در کوئی نمیدیسه. نصخه علفه. ده. یا نسخه با دو تا نسخه را اسمش بیزارم و اگر مثلا اضافه ای از نسخه با اومد در مربعش بیزارم بعد یک پاینش تبین نسخه با این چیرین در نسخه با اومد ولی اینکه همینطوری مثلا این چیرین کاری بشه در کتاب این در تصانیف قدیم نبوده این در سانه عبیدهود نسخه اصلیش نه مربعه هست نه خط پاسری هست, هست, هست این مسایل نیست نه فرانتیزی ده نو پریکیناس گفت که ام محققه مسافتیا از این یعنی بدون پرانتیس و بدون خط فاصله بود بدون که ادراجه ارا ادراجه کترابیا یعنی یک یک ادرابیه بعد یک مسئله روشه شده اما اگر اینیا در پرانتیس قرار در دو خط فاصله بودونه که این از محقق کتابی کسی کتابو تعریف کرده ادراد اولی نه مظلوم وقتی که با حدیث قاطعی بشه ما ندیدو که گویندهش که اگر این احتمال اومد که اون مد اضافه بشه اون قسمت با کلمه یعنی اضافه بشه به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم و بخشن با کلمه یعنی این فاصل ایجاد بشه یعنی مشخص بشه که خود رسول الله صلی اللہ علیه و سلم کلمه یعنی را نگفته ولی اگر یک گفتیل اضافه بشه در اسنات یا در مد یا بباید اگر گفتی اضافه بشه در مت ادراج بشه اون, اون کار اون شخص مظمومه و اون شخص اون راوی با این کارش مجروح هم میشه اگر مشخص بشه یه اینجین کاری در مت بده نه در مت در مت در, در مت دیگه هست در دیگه مشخص میشه کنه در مت داره بخش اختلاط خود راوی هست و زعفش یه ولی در مت مگرد ایجاد بشه دیگه زعفش شدیده ان رونابي اگر بياد مثلا يگفتي را پاس خودش اضافه مگه چون دروغ الله عليه و سلم بشه خب اما اذا افلنا من الجزء شيئا لا تصف تصانيفنا وتخارج نفينه ليس في ذلك تغيرا تصيف الاول بها قال الكثير من 학اتي الكتابي مثلا كتاب صحيح بخاري یک حدیث رو نقل کردیم. اومید آوردیم به کتاب اصل خودمون که داریم نقلش می‌کنیم. جایزی که بگیم به معنا رو برداشت بکنی، اینجا جایزی که تصرف درش بکنی، دیگه لازم نیست که ما خودمون رو مقید بکنی. روایت رو نشринیم، بس بگیم یوندار یا اونور نگاه بشه، نگاه شود رجوع شد به کتاب فلانی. ولی اگر خالقی گفته رو مثلا بگیم امام بخاری گفته است یا کلین امام بخاری در کتابش آورده ويقعون فرانتز، لم يشخص بشيء ويقعون فرانتز، يعني يجب أن يشخص بك لأنك أسكنت، وكذلك قفصياً صاحب كتابة كتاب. قلت ولا يشغ تغير ذلك إلا في تطيع الحديث تطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد ويقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دار بحث الرواية بمعنى یک حدیث را خاصید مثلا، حدیث نمال امانو بردیان. خاصیده را شما نرک بکنید از صحیح بخاری. درست نیست که شما بیایید این حدیث را تکیب تکیب را بکنید. مگر اینکه مشخص بکنید با پرانسید داشتن مثلا، این نمال اعمالو مثل مثل مثل دا دا برد برده برده باید مثل در فرانسل مذارید یا در فاصله واسلید ورکه یه روایه چه؟ به این اگر به فرس مثلا در صد علاق مهم کاری که ما ببارید اینجا من آلوانی کنه در اون سرسکه ببارید اگر ما مثلا چه صد رو باید با هم در کنار رو هم بذارید دیگه نبیتونیم مثلا در خصد اصلاح دیگه این عدید یعنی با این مضمومت دیگه به این مقض شبک کردیم. چون هر اثنانی مکنون سخی دارد با این مقض اثنانی که با این مدل اثنان دیگر با ان اعمال اعمال دنیات نبیتونیم بر این از سخ شد کنید. و این جو سبب باید به المعنای مکنون مکنون. باید مشخص شده و کسید که لمسانی ختمیم گفته با از اثنان دیگر از اضافه مقودیم باید مشخص بکنید از اثنان دیگری با از اثنان دیگر. این یک بسید چند تا مسئله هست در حمین دروند مسئله بعدی در حمین بحث نقل از کتاب و یا روایت معنا چو آیا روایت بمعنه درستی یا نه؟ الان ما شرط و شدود دارند که میخواد معنا معنه روایت بکنند باید عالی لغت عریبی باشه، فهم داد داشته باشه و الی آخر شرط و شدود الان بیونه یکی از مسائل مهم در زمن نقل حذیث یعنی وقتی که میخواد میخوادمثلا این شخصی مثل ما بخوریم حدیث را به معنا را باید کنه چه موقعه ما بخوره حق داره اجازه داره که حدیث را به معنا رو باید بکنه وا ما چین میگن که در صورتی جایده آ که بخوراری به لغت عربی هست در صورتی میتونه حدیث را به معنا را باید بکنن که همون حدیث را با من کاملش همان حث را با متن کامش جای دیگر ورده حدیث مثلا ما داریم، مدمش خیلی تونلی هست. امام بخاری مثلا یک وجه شاهدی را در یک قضیه میخواد ازش چه استفاده بکنه. حدیثی هست مثلا ما داریم درباره نماز هست، ذح هست، حجم هست. امام بخاری اون چیزی که الان میخواد ازش استفاده بکنه در وقت نماز، نه دیگه کتاب رسولانی بکنه. میتونه حدیث را کتب بکنه، کچی بکنه و اون خدمت وجه شاهد رو نقل بکنه در صورتی که همین حدیث رو به طورت حاملش در کتاب در کتابش ذکر کرده. در این صورت میتونه حدیث را قد بکنه و به معناه اینچینین مقتصر را باید بکنه. بحث اختصاره. هرچندگی این اختصار تغییر در معنا ایجار نشده. به قدران قسمتی را باید را را قیشی کرده. ولی الان بحث همین نقل خود امان بخاری و اینکه امان بخاری مثلا بیاد حدیث را قد اقتعه بکن غیر این بحث که در جلی دیگر اون روایت رو کامل آورده باشه چه شرط رو توسی دیگر علماء بوداشتن اینم جلی بحثش هست یعنی آیا علمان بخاری خودش اومده این این کاری رو کرده یا اینکه این که این روایتها رو همینطوری به همین صورت شنیده یا اینکه حالا این که بلا بحث چه این چین این کاری میکنه بگه که مثلا كذروا على النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما سأل الله الجزء ما سأل الله شيء ذلك بهم جملة خدمة بالزهبي قلت ولا يسوق تغيير ذلك إلا في تطريق حديثه في تطريق حديثه يعني إن مسألة تطرف درماث دروس نيس مجال إن كي حديث رتكب في جمع أحاديث المفرقة يعني كبيرين أحاديث متفرق رتكب لسهم حديثه إلا ما العمل بالنيات بیاییم با الفاظ متعددشش در یک رجعه هم بکنیم اثناد ها واحد را خصوصا اثنادش یکی باشه مثلا به فرز ارام هست این نمار عمل بنیان و این نمار عمل بنیان با چند تا اثناد مختلف کریم شاید همین روایت ما داشته باشیم با یک اثناد ولی که در روایت مالک یک هست در روایت نمیدونم متعبه یک طوری در روایت ظهری یک طوری دیگه فقط از ما شیخ متف اون روایت را مثلا یا خودش به طور مطفاقه نبکرده یا اینکه شاگردین اون شیخ مثلا به نمیناهی مختلف از شیخش نیده یا از شیخ یا از شاگردین که مثلا به طور خلاصه روایت کردن. در اینجا میگه که میتونی مطرقا به هم اضافه بکنی همون کاری که آلوانی در مخصر صحیح بخاری کرده و بعد آخرش بگید چنین از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم روایت شد. چنین از رسول الله صلی اللہ علیه و سلم روایت متنها را که با یک اسناد اومده کنار هم دیگه بذاریم مثلا روایت ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه و سلم ده وضو پیدا شده یا مثلا روایت سلم روایت عثمان ما می‌بینی که مثلا در سنن ابی با یک در سنن بخاری در صحیح بخاری و یک کلاس ما میتونیم این اسناد دیگه صحیحه الفاظ شریج رو هم انجام بکونیم و و اون حدیث رو تلفیق هم دیگه یعنی هم بچسبونیم اون در کتابش در کتاب منتقلش بکنید. خاصن که شتاشو دیگه حسنین این همینیطوری هم نیست که مثلا به فرض ما به خودمون اجازه بدیم که یک حدیثی که مثلا تحت از ابو هریره مثلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت روش بیام بگیم که مثلا در روایت ابو هریره چیزی اومده و بیاین مثلا از اسناد دیگری در کتاب دیگری که همون حدیث اومده اضافه بکنیم به حدیث جایز نیست همینیطوری باید رابیان نگاه بشه در جشن اون شاید مثلا یک از راویان حافظه داشته شاید مشکل داشته شاید از سوجار رو اختلاط شده همه این هم بشه همینطوری نیست که مثلا بفر فکر بکنیم که ما میتونیم یک متیزه حدیثی که مثلا ابقرره رو باید کرده همه همینقر رو, رو باید های ابقرره رو را سریجا بکنیم و یک جا نقل متونیم بگییم این چیرین در نوبت بخاری اومده خیر این حق منداره قال مساله جزء المساله حاضر گفتم جزء را بشه تحقیق کرده بشه بحث نوشت مسئله بعدی و قلت تتصاحب عليه تو عليه غير او اراد صلاح قال ورحيت سبع قلاله بعض ايها اجازه دادن اسمحن اي بعض اجازه دادن که دوگ ايها سمعت و فلانا فى من قراءه مثلا من از فلان شنیدم در اون چیس ايها خودش خونده کتاب دستش ره روش مده ايه کتاب خودش شیخ بیش شیخ خونده بیگه جائزه بگه من از شخ شخ شخ شخونده چون از مكتو از مکتو از او او او او ا اي ا ا او ا او او ا چون گفتاری که داره کنارو شیخ میخونه از گفتار خودشه اون گفتاری که خودش میخونه یا کسی دیگر ای میخونه از گفتار خودشه شیخ, شیخ وقتی که تائید میکنه این گفتار مثل اینکه خودش گفته شیخ بس اینکه تائید میکنه گفتاری که برایش خنده میشه یا اون شخص خودش میخونه مثل اینکه خود اون شیخ اون مسئله رو داره نقلش میده برای شاگردش میگه و حالا خلاف صراحت میگیم در اصل برخلاف آن چیزی هست که در علم و مصطلحه چون در علم و مصطلح ما اون چیزی که خودت میخونی باید بگید قرآتو على الشیخ خونده ما شیخ نه این که بگید سمعتو اصبر اینه که الفاظ باید محدد بشه نباید توریه بشه در الفاظ هرچن که جای گفتیم وجهش هم گفت ولیکن بهتره که همون قرآتو على الشیخ او قرآتو على الشیخ أو من باب روايه بالمعنى ومنه قول المؤخرين سمع فلان ان فلان يا اسباب روايه بالمعنى مثل قول بعض المؤرخين اللي ميگن فلاني از فلاني شنيده يا مثلا فلاني از فلاني نقل كرد يا شنيده در اون چيزي كه مثلا پيش شيخ خونده حالا اين مثلا مثل اون مسئله فردي است مسئله مثلا, مثلا اذا م... اول فإن على على العبارة جاذبة بفاقة كما يقول المسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلا فإن يحققون على التأخيص في التصليم الصابح إذا أفرد حديثا من مثل نسخة حمام أو نسخة بمسل فإن حافظ على العبارة جاذبة بفاقة و افراد حدیثا من مثل نسخه همم نسخه همم کتابی است کتاب که از همم به جا مونده ابن منبه سنعالی که سال سبب سی و فوج شده یا نسخه عربی مسحف که بازم بیکی از شیوخ قدیم هست که امام امثال امام بخاری و دیگران امام مسلم از این کتاب ها و صحیفه ها نفت کرده جایزه که اون نسخه ای که ما میدونیم تاکید داریم روی. که از اون شیخ به جا مونده یعنی اون نسخه خود شیخ مثلا نسخه حما منبه جایزه که مثلا امام بخاری بیاد بگه قراتو بنسخه مثلا شیخ فلانی من در کتاب فلانی خوندن میگه جایزه که مثلا اتناد بده به اون کتاب و اون حدیث را ۱۶۰ كتاب ناكول بكولن بيها مو تلك امو مسلم احادث رزيك مي کونه با فذکر امو حديث منها وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم یعنی بیارث مسلم امو مسلم احادث رزيك مي کونه ببعد بیع رسول الله صلی الله عليه وسلم چین فعبیم وإلا فالمحاحاقققون على التاقیث فى بی محقیقی با م ر ر ر ر ر ر ر ر تصرف خيلي اندر يعني با تصرف خيلي كمو اندر در اين مسئله هلا در باص حسين امام احمد شطشيني النبيه فائده صحيفه همام المنبذ صحيفه جيده صحيحه الاسناد وقد رواها عبد الرزاق المعمر عن, عن همام عن النبيه روره صحيفه همام المنبذ في خصوص اسنادها صحيحات اشخاص مثل عبد الرزاق قد همام از روره و دوغان دوياكده واتفق وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على كثير من أحاديثها خلال, خلال أحاديثها منها من بعض الأذهم السحيفة إمام بخار المسلمش التفضل وانفرد كل واحد منها ببعض ما فيها وإسنادها واحد بعضها متفرسة بعض هذه الوقتها ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة أحاديثها مزدها الصحة هميكسونة و هذا حجه لمن ذهب الى ان الشيخي لم يستوعب الصحيح ولم يتجمع طريق كل مصححه عندهم متوافر باشد که امام امام احمد شاکر در واسطه ذکر میکنه بالا بحث فقط در اینه که امام بخاری از این تصوف ها از این کتاب هایی که به جا مونده از امثال حماء و دیگران با اسنادی که بهشون رسیده از این کتابا نقل کرده کتاب تمام مننب با اسناد عبدالرزاق به امام بخاری رسیده امام ابو خالی میاد از طریق عبدالرزاق همی سعیفهی که رسیده نقلش میتونه میگه که بله من در نسخه هممم خوندم از طریقی از طریق عبدالرزاق امام مسلم میاد احسانی در حدیثم نقل میکنه در آخرش میگه و قدر و قد وجدتو مثلا في نسخه هممم تا آخرش حدیث رو ذکر میکنه و میگه که من همی الحدیث را به همین نحط یا به همین صورت فلا حد مذاریک از مساله به همین بحث من همین حدیث را با این اثنار یا با این طریقه در کتاب فلانی دیدم در کتاب همم یا در کتاب همم یا در کتاب همم یا دیمشتر دیدم چهارم این مثلا؟ اختصار و حدیث و تحطیح و جایب، نزال این خیر نید بله، اختصار حدیث و قطعه که میان شد که ما بخالی جنگی کار جائز اگر خلالت در معنى جده شد مثلا مثل آية قرآن فويل للمسلل بیاید متلاقف مشید دیگه با كافزت نکنید والله خوصا این چه در تنجیس ها در شيایان زیاده مثلا بالفرض برای اینکه مثلا سنی ها رو مثلا فرض خود زیر منگنه قرار بدن مثلا به عنوان مثال میگه که بلی او ایشو رفیق رسول الله صلی الله علیه و آله بود دهنده سرش حدیث هم در صحیح در مصادر احمد و سنه صحیح او خودش میگه من زدم به سر صورتم خب این قصه فقط نقلش میکنن دوبره چی دوبره خود ایشو میگه من کوچک بودم و اون موقعی که بدن خبره رفت به بود اصلا ما درست شده دیدم اشتباه کردم در واقع اشتباه هم زدم اصلا در اون حال اشتباه هم در اون حالتی که اخل از دست ساده بودم پشت اقرار بفرید و من اشتباه کردم. آا شما بیاید این قسمت آخرش من از سرم زدم اصطلاال بکنی به این اینکه سیلهزنی و نمی ببینم نشگوی و نمیم فران جایزه میشه خیر نمیشه چون خودش داره میگه در ابتدای اصلد من از هم اقلیم جینایی کردم عقلم از دست دادهده بودم و اشتباه هم کردم. پس جایزه است که ما بیایم یه خلیث را kat'a esh bukunin be nafs-e khodum tamam esh bukunin u on qismati ke bar aleha ma hast hazrash bukunin va zikrash nakunin in ka juz-e khiyanat hay ilmi hast khiyanat dar in ma khiyanat mikunin be kasoni الله تعالی و عنایت و توبه عظما بله میگی که از جمله رخصه هایی که داده میشه در علم مصطلح یا اینه که اول متن میگه بعد اسناد امام مسلم زیادی کارو این, رو فلانی فلانی این کارو میکنه و بالعکس اسنادو بگید بعد متن مثلا بگی که رسول خدا فرمود که پشیمانی توبه هست این حدیث را فلان این به ما گفته حدیث هم صحیح یعنی بعد به متن توجه بکنی بس است این کارو مسلم زیاد در کتاب صحیحش نمیبینید Masa lipanju? Ashala. Esa saka haditha miznala, shoma al-ka'un, miznala al-haqa al-haqar waqar, haqar waqar, haqar waqar, fa'r al-haqar waqar, fa'r al-haqar waqar, waqar waqar waqar waqar waqar waqar waqar waqar waqar بعد бият אסлон دیگه دراز بکونه کاری که ما مسلم میکنه همین صدای نماینده اول اون میاره بعد میگه که مثلا به و این صبر و این اسلام شنیده میگه اگر همون حدیث با همون متن باشه باید بگه و مثلها یعنی هر می حدیث رو من شنیده حدثنا فلان فلان مثلهم اگر به همون معناس اون باید اون شاک حاصب باشه دقیق باشه که دو تا رو با هم مقایسش بکنه مثل اون روایت واقعی که مد مثل هم باشه. میتونه بگه مثل ولی اگر لبز عوض شد باید در انتهای اسناد اصناد دومی که او بعد از اون روایت بگه که چی؟ نه حالا جای ایمام مسلم چی میکنه؟ مثلا چیه خلصه از نمتن؟ خلصه از بعد حرام و خلصه از حالا این با کلکیر حاضر از نمت اصناد عوض میشه. میاد از ضمن همین جایی که مثلا به سر میخواد مطمو ذکر کنه دیگه حا و حده نبولا به نحویی به نحو اون روایت که میخواد دیگه بلا اصل روایت اصل مثل یک این این سه چهار درستانی که ذکر کرده یا جاهای دو تا درستانی که ذکر کرده این دوتا مطموش با هم متقاوته ولی اگر نگو به نحویی یا به مثلیی بدونید که مطموش این دوتا روایت ها مثل همین علشان شماها همی که مواصعه دارید میدونید حالا مثلا اینکه باز نکردن صحیح مسلم این کلمه حرامگیه نمیدونه که ما در چه زمینه‌ای صحبت میکنیم فتر دا فتر دا دا که مثلا لفظ عوض شد و بگیم نحب اون به معنای اون یا به نحو همون روایت اخر مطلب مطلب شیشوم از مسائل همین کتاب اگر قال اذا قال عبد الرسول مذاکره داد علی و اما ربنا اذن هو ذا متكرره تتداسط مراحلها ومن فبملاسه قليله فبملاسه او للسمع من غير مقابله فان قرا هذه الاغوال التي لا من يجوز ولو ذلك فليسحوا فيما صح عن من دون ملوث وان نظر قالت فقد فمحتر دار الله يا الذين ذكروا فيما بعد اي يحدث من ما گفته در باب مذاكره مذاكره مثلا احاديث ما شري مين و شمالي هم بازگو كنيم اين بازگو كردن حق نداري كه مو بگين ما از فلاني از باب مذاكره ميگين اين وحده در در كار هست چون در مزاکر انسان اشتباه میکنه پای انسان میلغده انسان سریع در اون رو با سر نقود که من شدیدم حدتا در اون الفاظ چون احتمال هست که اون را به اشتواه رو کنه بخاطر همین جایز نیست که ما بیدیم از فلانی از با مزاکره شدید این جایز نیست در علم حدیثی از جورت صاحلها که در علم حدیث میشه السماع من غیر مقابله السماع من غير مقابله که مثلا بالفرز یک شخصی از شیخی مشنبه بدون یک اصل معتبر بدون یک اصل معتبر فإن كان کثيرا غرطی لم يجز اگر اون راوی اشتباه بکنه یعنی مثلا بالفرز من به این مثال این مثال بيتر الخص سری ممسئله پیش میاد در کسانی که ضبط صدر ندادارند زد کتابدارن. یک حدیث را از شخ و و در کتاب نفرش کردن. خ این حدیث به شنیدن درست نیست که از حفظ غ مظامی که اعتماد بهخرشون نداند حدثش این خلی هست درست نیست که بیان بدون کتاب و حیث رو نقلهکن. ف كثير غلط لم یا اگر اون راوی اشتباه میکنه. دارفت اش مشکل هست و باید از اون اصل معتبرش از اون اصل مقابلش با نسخهش اگر اعتماد بر اون نسخهش داره جایز است که بیاز از حفظش ذخیرش نقلش بکونه اون حدیث و انتقالش بده و این جو و ذلك فیصح فيما صحه من الغلط اگر جایز بدنین صحیح می‌دونیم اون روایتی که طبق اصل و اشتباهی درش دون المغلوطي وإن ندر الغلط غير غلق جارز ان كربات درش غلطه سنهن تلك غلط درش قد اشتباه درش هست جائز نیست که ما درش بشنویم درش که درش نغو بکنیم حتی باشه چه احتمال هست که در الفاظ دیگه در جاهای دیگه در اسناد یا متن باقی بکنه و جابجاش بکنه لکن لا یلذو لکم فی ما بعد ان یحدث من اصل دیگه میگید ولی بعد از اون دیگه جایز نیست که اصل شیخش حدیث را نقلش بکنه حالا عشان این مسئله یکم جمله آخر لا اله الا الله یجذلهم فيما بعد یک مسئله یکم مشکلی در شخصی که این جمع این مطالب تا اینجا دیگه مسئله بعدی شو چلمیدونیم برای جلسات آینده آدم امام محدث و دیگر مطالب همین کتاب دیگه مقابله در نوروز که برای درس داریم اون دوست داشتن قبل از نوروز این, این کتاب تمام بشه لا ببینیم چقدر بر خواهیم داشت حچه که مطال خیلی مهمی هم نیست که در این, این ماب ای کتاب باقی مونده. این کن سعیز اگر شد یک جلسه دیگر هم اضافه بکنیم که این کتاب تمام بشه قبل از ن یکی دو جلسه اضافه میزیم که این کتابشار را نگه قبل از ضرور درش بزنیم. یک جلسه یکی دو جلسه رو ببینیم و ح ستاعتمون چند در اضه میکنیم که اینسه شده این, این کتابش تمام بشه قبل از ضروج та дигар иншааллоҳ ки на фавта бахти бикашим ба даст. рӯз ва идомаи